الحمد لله الله علاء الله و الطيبين الطاهرين المعصومين ان على جميع دست و اجمالاً مطالبی رو متعرض شدیم برای عنوان تمهیل بحث و حتی شیفیت بحث اجمالاً بین اعلام حتی یک فهر استوار به اصطلاح کلمات <ginsled> مرحوم استاد و, و آی فخرازی رو از شیعه و سونی به عنوان فهرست اجمالی بحث متعرض شدیم حالا وارد خود بحث بشیم از کردیم راجع به اقوال مسئله و تاریخ مسئله و خصوصیات که مرموم استادشون متعرض نشده بودن ما یه مردار مسئله رو این که متعرض شد ولی اینکه ردیف بحث روش هم بشه قاضیتا همون کتاب مصواه مرموم استاد رو که با اون برای مراجعشون راحت تر باشیم از, سخ... از همین جلد دو این چاپزه ای نیستی شما به هم باشه شنشد صفحه 188 ایشون آیه نبع رو ذهب کردن از کردن اونی که در کتب مخصوصا اصولین شیعه متاخر بیشتر آمده آیه نبع و در کتب احل سنت رو آیه نبع بیشتر تمسطو کردن و بعضی هاشون مثل هست فقط همون آیه نبع رو بودن اونده تمسطوشون با آیه نبع از کنم که اون وقت مرمون استاد سه وجه برای استدلال به آیه مبارکه ذکر کردم یکی بجه اول به صحبیرشون استدلال به مفهوم و به این معنا که خداوند متعال فرمودن انجا حکوم فاسقون به این فتره یعنی امر به تراییون فرمونن از خبر فاسق و واضح هم هست که تبیان واجب نفسی نیست بله ها به جواز لعمل به برای شرط و اگر تبیانه آن بلا تعلقی به عمله منال اعمال لیسه به واجب نیعینه ایشون از این راه که تبیان اگر خودشی نفسه وجوبی نداره چون ناظر به مقام عمله لا انسان خودش معناده که تبیان بکن بله اللهو حرام فه انا تفخص ان کونی صادقاً او کازباً کنون من باب تفخص ان عیوب ناس این بررسی عیوب ناسه و یاد الله علا کون الوجوب چرتیان معوضوحی فی نفسه از تعلیل المذکور فی ریل آراد الشریف ایشون دقیقونم بلی که این تبیان عجوبش عجوب نفسی, نفسی نیست عجوب شرکی و هوا قوله تعالی انتصیب و قومن به جهالته خلاصه ولو بعد از اینکه که وجوب تبیین ثابت شد و این وجوب هم وجوب شرطی است فیکونو مفادل آیت شریفه اندر عمله به خبر الفاسق یعتبره هی تبیین و هن فیجبه تبیین و یکونو مفهوم این منطوق آیه و یکونو مفهوم به مختصر تعلیق علالوست امال عمل به خبر غیر الفاسق لایه اتوافیه تبیان پس اگر در فاسق تبیان واجبه در فاسق واجب نیست فلا یکی قد تبیان خبر غیر الفاسق خی مقام عمل به واجب نیست تبیان و حوال مخصوص و حوال مخصود مخصوص بسه ایشون چون دیگه مقام عمل رو بهش اضافه فرمودن فرانه تو مقام عمل یا تبیان میکنی یا نمیکنی اگه فرگان نکردن دیگه میشه از جد ا وکنه غالبا در کتاب و اصول اگر یادمون باشه تو خود رسائل و دیگران یه نه چون گفته شده چرا هم دیگه خیلی تقرار در گفتن اگر در خبر غیر پاسه تبیان واجب نباشه یکی از دوتا باشه یا با ردش بکنیم یا قبولش بکنیم رد که معنا نظرش و معنیش به اصطلاح بدتر باشه از پاسه پس باید قبول بکنیم پس این دو تقریب ذهب شده عادتاً بله قبول خبر فاسعاده یکی این تغییری که ایشون رو که این تبیان تو مقام عمله اگه تو مقام عمل یا انجام میده یا نمیده اینطور یه تقریب که ما اعنیز از مقام عمل بعد ایشون میفرماییم راها در استدلال یه تمسک مفهوم وحث غیر و تامه لعن و انکانه بیادل و علال مفهوم ما سابقا تو بحث مفهوم من تو مفصلا متعرض شده که مرحوم اسد و صدال صدایی خلاف اندل مشهور یک نوع مفهوم وست رو قائلند حالا نه اون مفهوم و مفهوم به تمام معنا قائلند یک درجه از مفهوم وست این در این چاپی که شده در چاپ قبل ایشون بود یعنی حاشیه از مقرر ایشون هم هست مقرر ایشون احمد الصادقی اونم فوت کرده ایشون در وسط کلامش داره که ان کلام الا تقدیر جلالتی علالمحکوق این الا تردیداتی و مبنای استاد عارف خوییات روی مبنای ایشون واسه کلام و اما حالا من عین عبارات ایشون رو خردم یه توضیحی هم خارجم من عرض کنم شو ببین بحثه مفهومی که داش اینجا نیست ایشون مرمای خویی یک مبنایی دارن که یک نوع مفهوم رو برای وصف قائلا و این کهانه یزالله علی المفهوم ادلا اینکه مفهوم بست رو اینجور معنوم کنن هوه اناله وق لیسه ثابتن لطبیه این هوه و قبیهت نیست ما سره در هر موردی که باشه مثلا اینکه گفت اینجا اکن فاسبون به نبعین تو این تبین مالا طبیعت خبر نیست خوده بست این تبین مالا طبیعت خبره این مفهومی نم مثلا اگر گفت مثلا رجولم آلمم این اکرام مونه رجول مطلقا نیست این وجوب اکرام برای طبیعت رجول نیست بلکه یک حصه از این طبیعت به آلم باشه این طور نیست که طبیعت رجول اینما سرد یجب و اکرام بود این انال حکم لیست ثابتاً لطبیع اینما سرد و الله لکنان ذکر روزن این بین مقدار از محکومیشون قائلن هر باگ باگ برد معلوم میشه خکم برای طبیعی نیست و این هست و, و اما کونالخوک منحصرن فی محل الوحص چون حتما در ذهن هست که باید در باب مخموم آیا اینجور گفتن اثبات ادلیت منحصره بشه انحصار در نمیاد به حیث و ینتدی به انتفاعه فهوه خواب جون مفهوم مخموم الوحص و یکتا جون اثبات کون الوحص الا منحصره یعنی علیه در میاد اما انحصار در نمیاد و لا يستفادو داده که من نفس الوحص فا این تعلیق الهوخم الوحص لا يستفادو من هلئلت منحسره شون در بار محکوم باید اثبات الیت منحسره بشه من این توضیح هرزم کنم. فا اضاقال المولا اکلم رجل العالم کان محکوم الوحص ان وجوب الکرام لم یه به رجل و لا کان ذکر الاعلم لغم و اما انحصار وجوب وجود الاقلام فل الاعلم به هیچ یه انتهای انتها پنین جو بیفام. به فلا یاستفاده می‌کند. ادل واسف این کان مشیرم بل الیه و آن الاعلمه ایله تن وجود الاقلام ایله آنهو لا یدولل الاحصار الیه لیفی. یحتما عجوب اکرام غیر العالم مثلا غیر العالم باشم از اکرام جوجون شون متقیه مثلا با تقویز با این که علت عجوب اکرام غیر العالم ایزن لیلت اخرى که کونی هاشمیه که کونی متقیه و علیه فیكون و مفهوم الوحص فیل آیت شریفه این نقطش اینه ام نوجوب تبیان لیس ثابتن لطبیعت الخبر اینشون عزیز را بارد شد به طبیعت خبر نیست و الا لکان ذکر الفاسق لقوه و لا یلزم من عدم وجوب تبیان ان خبر غیر الفاسق اما معنیش این نیست که غیر الفاسق مطلقا خبر خبول بشه از این جهت نمیشه اولا یستفاده من کون الوصف یعنی وصف فس علتا منحسرتا لوجوب تبیان که یمتفیه وجوب تبیان به انتفاع این وصف بله بلی یهتم الوجوب تبیان ان خبر العادل ایزن احتمال به خاطر دیگری و یکون الفرق اضاکان واحد هم. بین العادل و الفاسر ان خبر الفاسر یجب تبیان و ان مع تعدد مثلا دو نفر فاسر هم بگن به خلاف خبر العادل از معتعدد یکونو بیانتن شرعی لا یجب تبیان و این ممکن است فرقش این باشه به ارحال اثبات نمیشه که خبر عادل مطلقا را بدون قید حجته در نمیاد ممکنه خبر عادی تا تنها باشه حجت نباشه ظاهری که بشه حجت بشه و تحصیل ان نه لای استفاد من مفهوم لغز انفاق تبیین الان خاصه مطلب انسان اثبات یک نوع مفهوم برای جمله ورسیه هستن آره استاد لکن این مفهوم اثبات علت منحصر نمی کنه این همون است که خب ببینیم در کتاب سواهی درستی مثل کفایی اینها آماده برای اثبات مفهوم باید اثبات الیت اولا باید اثبات یک نوع و این ترکتو به نحوه لزوم و این لزوم به نحوه الیت و این الیت هم منحسره مثلا اگه باید با این جا اکل آلم فرقه این معناش این است که این وجوب اکرام فقط و فقط ثابته برای اینکه عالم بیاد خونه شما دیدنه تو. این جزا را اما اگر عالم نیامد دیگه ثابت نیست این مفهوم هم علت منحصده اولا عجوب اکرام مترکته است بر آمدن عالم این طرف به نحوه لزومه این لزوم به نحوه الیلیت این الیلیت هم منحصده این مقدمات اثبات میشه لذا به قول آن چهار تا مطلب در باید مخلوم ثابت بشه تا بودی ما مخلوم گیری بود در باید مخلوم بخش هم همینطوره بقیه خلاصه این است که ایشون را آیون که داره اون وقت مشهور میگن در باب وست اصلا ادلیت اینها در نمیاد و در باب وست یک محدودیتی فقط هست اما این که انتفاع اندال انتفاع نه چون مفهوم عبارت نیست از انتفاع به شخص اند انتفاع موضوعی مفهوم نیست اگر گفت یک مثلا عالمی رو در شهر اکرام بکن عالمم هم خود کرد خب وجوبه اکرام برداشته باشید چون موضوع نیست که از موضوع نبود وجود وجوبه اگر گفت این میت رو بشور گرگی آمد میت خوب خب وجوبه قصد برداشته بیر خب جایی بست اصولا محکوم این میز خوب دقیق بکنید اگر موضوع نباشه خب برو میز بخرد تو بازار میز میز خب منطبیه این میز محکوم انتفاع حکم یا به قول آیون انتفاع شخص حکم انتفاع موضوع این مفهوم نیست مورد از مفهوم این نیست مراد از مفهوم اولا دقت بکنید بکنی من یه توضیح اجمالی میدم که کلمات و استاد و افهامات یا کلماتیشون حل بشه مفهوم عبارت از یک نوع مدلول لحظی برای کلام دقت بکنیم که ادعا شده که به خاطر وجود این خصوصیت در کلام کلام دارای دو مدلوله ما اصطلاحاً تا نگفتنی اسطلاح بنده است ما همیشه در اوحاس اصول این نکته رو بردیم. از همه اولی که اوحاس اصول حالا ابتدا اندرسات سغرام از سرمی شده بعد ابتدا اندرسات علم مدنون شد یکی از مطالب بسیار مهم تعدد مدلول در کلام واحد بود این نکته اساسی بحثه تنوقی اساسیه بحث و تعدد ممدود مثلا اگه گو آب بیا یعنی مفهوم معنی این عبارت چیه ممدود مفهوم این عبارت چیه خب میگه مثلا اگه ما میگیم این عبارت بحثه وا داشته خب این یعنی ممدود دوم هم داره ممدود دومین این که این آب آوردن در ذمه شخص هست اگر الان نبردیم ساعتی بیاد مثلا بگم آیا این مدلول هم داره مدلول سوم هم داره اون که این آب باید محقق بشه حتی اگر طرف آب نیغد شما شللا بدن تا آب بیارد د عدها مین نه همون فقط توش بحث در میاد ن رفا در توش در نمیاد تحقق در خا دقت کرد این یه بحث کبرویت اصولا ما در اصولی که از بحسهای مهم و اصول این تعدد مدلول این فن اصول. البته این لغوی هم هست ریشه لغوی داره اما اضافه بر ریشه لغوی ریشه قانونی به خودش گرفته شکل قانونی به خودش گرفته اون شکل قانونیش این طوریه تعدد محلول مثلا سیغه لا تفعن دلالت بر زرش گفتیم خب اضافه بر این که داز بر زرش کنه آیا دلالت میمونه که این عمل هم باطله؟ البته این تصور ما از مقلب آیان مثل مرحومات و دیگران و مشهور علمال آخوی چون نزدیفتر به ایشون حواله میدید ایشون آمدن اینجا را از باب تعدد نگرفتن از باب ملازمه گرفتن خود مرحومات خویی بحث نحیه در عبادات و در معاملات تو بحث ملازمات گذاشتن اون بحث ملازمات معناش اینه که اینا میگن مدلول نه فقط حرمته آیا حرمت ملازمه داره با بطلان یا نه خوب دقت کنید اون اینجوری تفسیر میکنه. مثلا لا تسلل بیو هر مولات الرحم این لا تسنده معناش زجر نماز نه نم. معناش حرمته آیا حرمت صلات ملازمه داره اینو تلازم دو تا حکم گرفتن یکی حرمت یکی بطلان مغلول کلام حرمته لازمش بطلانه. رضا رو خوی تصریح میکنید که بحث ملازمات بحث مثلا غیر از مقدمه واجه و مسئله زه مسئله نحی در عبادت و معاملات و اشتران جزو ملازمات رو ده. ما اونجا توضیح دادیم که بحث نحی در عبادت و معاملات به تصویر ما ملازمات نیست سر بشمینه چون ما اونجا رو از وای تعدد مدلول وارد شدیم نه از باب ملازمه اصلا خود معنای لاتوسله معناش اینه که نماز باطله نه اینکه معناش حرمته معناش زجر لازمه زجر بطلانه و قصد فهمید خیلی به بکن مثلا آه مسئله را از این راه باید قیل از آه مشکل و علمه های ما از نوست ماه توضیحاتی اصلا دارید پر به اینجا و مسئله اشتوم نه و اصولا در کل دنیای اسلام طرق این دو مسئله یکمی با ابهام بود بعضی هر دار از یک باب میدونم با بعضی هر دار از یک باب اجتماع میدونم بعضی هر دار از باب در عبادت میدونم بعضی یکی رو جدا میکنم این توضیحاتشو مفصل حلط کردیم تاریخشو حلط کردیم مخیم باید این بحث بشید فقط ما خواستم نکته بگیریم پس دقیق بکنیم ما تو اطول همیشه با تعدد مدلول روبرو هستیم. الا این تعدد مدل قراراً ارز کردم خدمتون. دو جوره یه دفع تعدد مدل موردیه این تو فکر میبسن یه دفع تعدد مدل کلیه تو اصول رو بودن. این پرقشانی دیم مثلا موردی اگر گفت این پولت از طرف من صدقه بده پولت پول که مال اونه طرف من من خب دیگه. اگر پول مال اونه صدقه من طرف خودش اگر صدقه از طرف من بخواد بشه پول اونیست دیگه باید پول من بشه از اگر گفتم مثلا مثال عربی اعتر عبدک انم پول از طرف من صدره بده میگن این دو تا مجلول داره یک که به من ببخش با توش باشه دیگه خب نمیشه پولت من نبخش نمیشه که پولت در طرف من صدقه بده یک مجلولش این است که پول اول به من ببخش پول مال من, من بشه بعد تو وکیل هست که این پول رو از طرف من صدره بده پس در حقیقت این پول از طرف من به بخش این نگاه می‌کنیم یک کلمه است اما توش دو تا مطلب است یکی بخشیده‌رفته پولش به من یکی وکیل از طرف من که اینو چی می‌گیم تعدد ممدود میگیم اما موردیه وقتی موردی شد میگیم تو فقه میاد تعدد ممدود وقتی موردی شد تو فقه میاد اما تعدد ممدود اگه کلی شد این تو اصول میاد دقیقه مطلب مطلب وقت باب مفهوم منطوع از تعدد مظلومه، اونم یک جور تعداد مدلولویه این ادعا شده که بعضی از کلمات این خصوصیت دارن به داخل قطعاقیم تره برس اساسش اینه بعضی از کلمات این خصوصیت دارن که به جای یک حکم دوتا حکم بیان میکنن. فقط یک حکم و این میخوام بعضی اون که تعبد نکنه نتنی. شوان نظرم از آیتو یه چیز فرم دیگر دیگرم خودتون تصویر بکنه. مثلا ادعا شده کلمه این در لغت عربی یا اگر نه ادواتی که شرط و زمان داره مثل متا یا شرط با مکان مثل اینه نه کلماتی که در لغت عربی برای صرف شرطیت مثلا مقال مقنی داره اضاف لذرفیت و شرطیت برای استقبال ستا معنا داره نه اینا نه اینای که تعدد مدلوب داره مثلا خود این این در لغت عربی ورز برای شرطیت صرف غیر از شرطیت چیز دیگه نداره. این لحظی که ورز شده برای شرطیت میگن خود شرطیت یک معناش اینه اصلا خود دقیقه بکنیم خود شرطیت در لغت عرب و لغت فارسی اگر این امکاری میکنه که دوتا مددون به کلام میده نه یکی اگر اینطور گفت مثلا انذارت زیدان فا اکرمو اگر زید خونت آمد بهش اکرام بکن این میگن این معناش این است که وجوب اکرام و وقتی که خونت بیاد و همچین اگر خانت نیامد اکرام نکن اگر خانت نیامد حالا فرصه زید از علمان شده چکلی شخصی از میگه نه چون گفته اگر خانت آمد اکرام بکن یا مثال عرفیه دیگه گفت اگر مهمان آمد نان بخن حالا مثلا فصل روز جمعه هم شده احترانا دکانه ها زود ترتیل بکنن بگیم آیا وجود داره نان خیده؟ بگیم نه گفته اگر مهمان آمد این خیده فقط داده معناش اینه که اگر مهمان نیامد نان خیده هم پس بحث محکوم بایتون روشن شد اینه که آخوی میان علت حسره و دیگران در حقیقت نقطه فنی اینه. که برای کلام دو تا معنا منعقد بشه لخصوصیت انطلاع خصوصیت آیا دو تا مطلب منعقد میشه یا یک مطلب اونی که میگه مفهوم نداره میگه یک مطلب اون میگه فقط ناظره به اینه که اگر مهمان آمد نام بخار نه نا یا بایدی که تا اگر مهمان آمد، نگو اگر مهمان آمد دیگه وجوب نان خیزان نیست. اگر زید آمد دیدن تو اکرامش بکون. اگر نیامد صحبتی نداره. خود دقت این شد. پس بحث در حقیقت فکر می‌کنه تا حدی براتون روشن شد و لزوم خود ما تعبیر اون این بود یک تعبیر خاص خودم توار نداشتن. اگر قضیه رو سنایی بگیریم اون مفهوم نداره. اگر قضیه رو ثلاثی بگیریم اونجا مفهوم داره یعنی قضیه سنایی و سلاسی تحلیل لبزیش اینطوریه ما در باب مفهوم اصولا نظرمون به جزاس اثبات مفهوم از راه جزاری این زالک زیدان فا ها این فا ها یک به اصطلاح قول ماها در اصطلاحات اصولی ها و اصطلاحات مختلفه یک حیعت داره حیعت افعر زده که داره بر وجود میکنه بر یک ماده داره که اسمش اکرامه استلاحاً میگن متعلق یا میگن موضوع اکرام رو یا متعلق میگن یا موضوع یک زید داره فا اکرمهو زمیر اکرمهو اون هم باید میشون موضوع باید میگن متعلق از متعلق پس یک حکم داریم که وجوب باشه یک متعلق داریم که عبارت از اکرام باشه یک متعلق از متعلق داریم که زید باشه دقت کردیم؟ بحثی که هست این است که آیا این حکم و به اصطلاح و متعلق به اون متعلق و متعلق مطلقاً مترتب میشه یا قید داره یعنی آیا شرطیت این کار رو میکنه مثلا اکرام زید در سورت آمده فقط همین یا نه یعنی به عبارت افایی تو میشه زیدی که آمد ببینید اکرامش رو این مفهوم اینه معناش اینه نه معنی دوم زید رو اکرام بکن در صورت آمده واقعی دعا اگر گفت زیدی که آمده اکرامش بکن به اصطلاح من این تحبیر من اصطلاح تو اصولی نعمده ده. این معناش این است که به اصطلاح قضیه سنایی است. اما اگر گفت نه زید رو اکرام بکن این دوتا وقتی قید گذاشت بسر تعلیقا اونم گاهی قید دگاهی تعلیقه نتیجه تعلیق اینه که این وجود وجود اکرام به زی تعلق نه نمطلقا در یک حیثیت حیثیتی که بیان و در حیثیتی که نیاد نیست یعنی کلمه این این دوتا رو اثبات میکنه نه یکی کلمه این دوتا مطلب میگه یعنی کلمه این اسواس میکنه تعلیق رو خود تعلیق معناش دوتاست تعدده مدرود خود تعلیق در میاره این, این تعلیق رو ثابت میکنه تعلیق دوتا معنا در میاره دو... میشه حالت سلاسی یک وجوب اکرام یک زید یک امر خارجی میشه سلاسی دیم معناش تعلیق در آمده این میشه سلاسی اما اگر نه ببینیم زید رو اکرام بکنیم این میشه سنایی اکرام زید واجبه میشه سنا هست بنابراین و لذا انشاءالا بعدم ارضو کنیم تو بحث مفروب شرطش تو همین آیه مبارکه لذا اگر قضیه و رو به صورت شرطیه باشه و تعلیق باشه لیکن مرجعش به قضیه سنایی باشه نگرم مفروب ندارم مثلا. همین مسئله عربی این روز فختن هو، اگر بچه گیرد آمد خطنش بکن این, این روز اختوردن فختنها به قطع بکنه این سلاسی نمیشه این معنیش نه که بچه به خطنها این روز اختوردن بیان بچه هست دیگه سلاسی نمیشه اما اگه گفت زید رو در اگر آمد اکرام بکن اینجا سلاسی میشه این عباراتی اصولی ها که اگر قضیه شرطیه مسوق برای بیان و موضوع باشه مفهوم نداره. صدوش اینه دیگه چون اگر مسوق برای بیان موضوع باشه اولا مرادش از موضوع روشن شد مراد متعلق و متعلقه سختن هو یعنی این رو ذخر دادن تفسیر سختن هو های در فخت هو این بیانونه اونه قضیه سنایی میشه در قضیه نکته فنی چیه پس تمام نکته فنی در باب مفهوم تا اینجا برای روشن شد یک تعدد مدلول وقتی این تعدد مدلول رو با توضیح بدیم منشه چیه دو خوب دقیقه بکنیم. برای اثبات تعدد مدلول راه اساسیش این است که ما وقتی حکم و رو در نظر میگیریم اگر حکم بگیم فقط رفته رو موضوع این میشه صناعی و جای مفهوم نداره تعدد مدلول نداره اگر شد نه تعلیقا به این معنا که بیاد اثبات نف... یعنی بیاد متعرض نفی و اثبات بشه اونجا مفهوم ثابت میشه و این که برای حتی مثلا آیا دی تصور کردن مفهوم لغت به میگن میان مفهوم لغت اذهف مفاهیمه سر اینکه مفهوم لغت میخوام یواشواش یعنی روشن بشه که منشأ کلمات استاد هم براتون روشن بشه سر مفهوم لغت چیه مثلا سر چیه من مفهوم لغت چیه وقتی لغت میز بخاست میز بخاست مفهوم لغب چیه؟ مفهوم لغب این است که غیران میز نخرد مثلا صندلی نخرد کتاب نخرد مفهوم لغب این سه ببینید مفهوم لغب وقتی گفت میز بخر بهیم معناش شما مفهومش همین میز بخرد میز مفهوم و معناش است که صندلی نخرد و چرا؟ نقطه مفهوم در اونجا چیه؟ چه نقصه ای اونجا منشأ میشه که مفهوم درست بشه؟ نکته مفهوم این است که میگن لفظ میز وقتی که در لغت عرب برسود برای این شیء خاص پس صندلی نیست یعنی میز در خارج صندلی نیست میز در خارج فرش نیست درسته؟ وقتی که این تو شد در حقیقت این طور ما میگیم میز بخر یعنی یک چیزی بخر که صدق میز برش بکنه و همون تحلیلی که از کلم پیچی یعنی میز بخر باید بکنه یک قضیه سلاسیه این تعبیر چون در کلمات و اصول مهدی من برای توضیح خدمت عرض یعنی اینجوری بگه شما باید یک چیزی بخرید که میز باشه وقتی چون خود میز در خارج توی قش مثلا صندلی میز پس این میاد تو مقام اعتبار قانونی معناش این میشه یک چیزی بخر که میز بهش گفته میشه خوب دقت کنید چیزی که میز گفته نمیشه یعنی صندلی نه این اصلا قانونی اینه سندگید. میز که در خارج اینطوره عملا صندری نیست این این نکته که یک شی که سندلی میز این حتی ارزش اعتبار قانونی پیدا میکنه پس کسانی که قال مفهوم لغلا در حقیقت باید اینطور بگن بگن معنای میز بخر یعنی یک شی بخر که صدق میز بروش میکنه این مفعول اول مفعول دوم که اسمش مفهومه یک شی که صدقه میز نمیکنه نخر بذیتون میشه اون شیئی که تقدیر کنه مثلا صندلی صندلی نخر لذا اویایی که گفتن مفهوم داره یا مفهوم نداره نقطه شون اینه اون آرمی که مشهور عائلا مفهوم نداره میگن آقا این معناش نیست میز میز معناش اینه که صندلی نباشه میذنه میز نیز. وقتی شما اسم میز میز فقط همه نگاه میکنن به چیز دیگه نگاه نمیکنن شما بچگی اولتون میشه حسن بچه دومشون حسین نه اینکه بچه اول به که بچه دوم و سوم نباشه نه نگاه نمیکنید که. بچهطور اسم که حسن این حسنه نه به خیلی که غیر این نباشه. اون دومی رو شما هم نظر نمیکن اونی که بهش نظر میکن اسمینه اسمین میز اسمینم هم اما این تحلی شیهایی که میز و سرو بکنه این نیست. و لذا اگر گفت میز بخرید این یه قضیه سوناریز ساسسی میز یا سراسینش رو مخفی نداره. اگر این تحلیل بندر غیر رضوی کهای خونی این تحلیل بنده رو انجام بدیم خیلی راحت میشه مفاهیم رو احراز کرد خیلی راحت پس اگر کسی نکته آمد گفت حتی مفهوم لغت ثابته اون نکتش اینه نکته مفهوم لغت اینه که باید یه قضیه صناعی سراسی بفهمه تا تعدد در تا تعد... به اصطلاح مفهوم در بیاد تعدد مدلوم در بیاد پس مفهوم و منطوق یعنی تعدد مدلوم البته ما در بحث مفهوم گیتون بحث ما الان در مفهوم نیست مفصلن توضیح دادیم اصل بحث مفهوم راجع به مقام وضعه اصل بحث مفهوم اصلش اینه این در لغت عرب وضع شده برای دو معنا یا برای یک معنا بوده قصده اصل بحث مفهومی کنید مثل لبز میز همی این چه کلا می شما آیا در لبز میز در نظر گرفتیم غیر میز رو دید؟ آقا ما گفت اسم این میزه نه اینکه این چیزی که سندلی نیست این چیزی که پرش نیست این چیزی که منبر نیست اینا اصلا تو نظر نگرفتیم تو مقام برز اسم این میزه اسم این کتابه درباب شرطم همینطوره باب کلیه مفانی. اصولا بحث این است که آیا این لفظ برای اینجا در لغت عربی وضع شده یا لغت فارسی که دو معنا به برسونه یا نه لكن بعدها که اصولی این بارد بحث مقروم شده اکتفاق به وضع نکردن اشتباه نشه ها مجموعه اقوالی که از اول تا حالا در کل اصول در دنیای است گفته شده پنج نقطه ازور مفهوم یکیش وضعه پارجنال هست که ما توضیحش اعرض کردیم، لکی اساسش واضعه، اساس این بود. حالا ممکنه کسی بعض واظ، مثلا حتی بعض اصلا اثبات مفهوم کردن از راه اصل عملی. این اولش رو از راه اصل عملی. میگه وقتی گفت میز بخریم، شک کردیم صندلی بخریم واجبه یا نه. اینا میگه مفعوم این کلمه اینه که صندلی نقد، اینا میگه نه شک میکنیم صندلی خدا واجب نه اصل براءت، براءت اصل. خلاصه <تصفح> خیال کردن مفعوم رو با اصل عملی اثبات بکنه. این مجموعه احتمالاتی است که در دنیای اسلام در این قرن راجع به مفهوم منطق دادن اصل بحث وضعی اصل بحث اما مجموعه احتمالات و از هر غیر وضعس مقدمات یک از اضافه می‌خواهند وارد بشن تا اصل عملی اون آخرش کدیش اصل عملیه بعضی‌ها اثبات مفهوم با اصل عملی کردن ما سعی می‌کنیم اماده زیارت که بده کاموچو اجرا کنیم. در یکی از اساس‌های برای اجراسته که می‌کنیم، مفهوم شرط رو با اساس‌های برای اثبات کردن یا مفهوم بسط. من فعلا نمی‌خوام از این برتر بخوام، چون اشاره‌ای می‌کنم برای کیه. اون وقت. پس بنابراین، کسی که قائل به مفهومه در حقیقت از این نکته رو، یعنی حکم که آمده با متعلق رو متعلق رو موضوع موزو. اگر حکم از هو موضوع مستقیم، این نشون می‌دهد یه سوالی. اگر نه، یه جای باز شد. این آمد کاری کرد که تقییب پیدا بکنه و تعلیق پیدا بکنه مثلا اگر ارتباط نخبه خاصی که به قول انحصار به قول آیون خویه را ایشان اگر اون اثبات شد اون وقت هنجا مفهوم داره بلا نظره پس ما اساسا دنبال تعدد مدلولی اساسا دنبال این من از اپن مفاهین رو که مفهوم لقبود براتون مثال دارم و معلوم شد که کسی که قائل در باقی لغم مفهوم داره نکتش اینه میگه وقتی میگه میز بخر همین میز بخر دو تا معنا داره می میز بخر غیر میز نخر ببینی؟ غیر میز نخر صندلی نخر کتاب نخر آن دیگه میگن نه میز بخر میز بخر چش که غیر میز نخر ساکته این شنایی قصه یه نیست یک مدید سلاسی نیست درسته میز در خارج معینی خود تک بکنید میز در خارج صندلی میز میز در خارج تکاب میز میز در خارج منبر میز خب سالله این اما این در وجود خارجیش تأثیر توی مقام اعتبار قانونی نداره توی اعتبار قانونی وجوب شراب میز خورده فقط هست نسبت به غیر ساکت اشیاری که میز بسنی شد چیم خون اعزی بکنم پس بنابراین اما شما در با یا در مفهوم هست لا تو کنم الا رجولم میگن لا الا در لغت عربی اینه اثبات میکنه یعنی لا و الا اثبات میکنه که غیر از من رو اکرام نکن لذا اقوای مفایم مثل مفهوم وست این سر که جز از مفایم قویه چون دیگه وز لفت وست شده بر اینجا. در این بحث کردن که آیا اینم توش در میاد این معنا یا نه این که زیدون و ها آیا این معنا توش در میاد پس بحث اول الان ما فیلن رو این نکته بحث مکن. اما بحث از در واقع مفهوم اوسعه بحث اول بحث نگه لفظ این در لغت عرب جوری بحث شده که دو تا معنا داره خود این این زاره که فکرم هو. یعنی چی یعنی این میاد قصر ثلاثی میکنه اکرام ذیل رو برای شک قضای وسط باز میکنه این اکرام ذ با زیارت با آمدن و در و معناش هم اینه معناش اینه که اگر نیامد نیست پس این معناش اینه معنای این پس ما مراد ما از مفهوم تعدد مدلوله این تعدد مدلول رو ابتداقا به حسب وزن میگیم. پرسیدم پنج جهت دادن. حواسم انگار افتاد. خلافی چون میگم چرا تقریب بود وزن میفهمم. چون اساس بحث اون وزن اولا. اون جاهای دیگه باشه اون حالا ما وارد اون بحثا نشیشه. اینه. مثلا ل... این لفظ هست که مثلا بچه اولش حسن، دومش دو حسین، سومش علیه. اگر گفت حسن رو اکرام بکن، معناش اینه که حسین و علی رو اکرام نکن. به این معنا که حسن در حال غیر از حسن غیر از علیه اعتبار قانونی وقتی بین اونجا جواب نزید نه اسم این بچه چی گفته حسن نبی این منا حسن این از تو غیر از این مثلا دیگه من نظر بین کردم غیرش حسن نظر دارم که اسمش نباشه حسن برم چیزی دارم اسم اینی که حسن گذاشته اسم اونی که علی گذاشته اسم اونی که تخیر گذاشته توی اسم گذاشته اصولا نه از نی آمده فقط اثبات آمده چون نافیان میاد قضیه رو سلبی نمی کنه اعتبار قانونی صورت سلسط... روشن شو می پس بنابراین حالا برای شما این نکته رو زن... این تحلیل کلامهای خویی ان شاءالله داره شن دیگه واضح شد. پس ما یک لقب داریم اون لقب در عالم واقع محدودیت داره یعنی اسم زنی سندلی حسن حسین مراد از مفهوم در ادبیات یک مثل تعلیق داریم که به هر حال دلالت بر این حالت میکنه که وجوب اکرام مطلقاً در نیست این دوتا یک چیزی داریم ما بین ها به قصیت نیست یه چیزی ما بین هم همه هم داریم معقول این که این در باب لغت محدودیت از ناهی خارج بود در باب شهر محدودیت و تقیید و تعلیخ تقیید, تقیید یا تعلیخ از باب لغت ام بود شده در شده برای تاریخ مثلا اما در با یه چیز دیگه بریم که قسم سومیه و اونم یک نوع محدودیته اما نه مثل لقب اون ظریفیه نه مثل این با اون شدت سراحته این اسم ثقیقت مفهوم واسه <تصفح> وقتی گفت اکثر المرجل الالعالم ببینید این رجل عالم قید خورد دقت می‌کنید اینجا قید آمد مثل خود کلمه میز که آمد برای شما محدود که از صندلی نیست خب رجل عالم غیر و عاال رو نمیسیه. رجل عا اینجا محدودیت است. این فرقش محدودیتش لذا آی خویی این رامدن را یک نحوه درجه از مفون قرار دادن اون تحلیل ما اینه این مقدار درجه از مفون کافی نیست از تشگاه. اگر مراد محدودیت یعنی عامل محدود میشه رجل محدود میشه با عامل راسته درست محدود میشه قبول این قبول داره اما این مثل محدودیت میزه محدوده. میز محدوده است صندلی که میز میذینه آقایانی که قائل هستند مفهوم نداره میگن این محدودیت مثل محدودیت لغته این محدودیت مثل شرط نمیکنه او بهت میگم حالا توضیحات ما خوب اجمال هم من توضیح اجمالی از میکنم ما ارز چون بحث ما در وضعه خوب دقیقه یا من یک کمیل مطلب باز بکنم توضیحات مفصلش بحث تو بحث من تو بودر سیده خیلی مجاز ارز میکنیم چون بحث ما در وضعه ما میمیم در حقیقت میمیم تحلیل لغوی میگیم و بعد بعدشم این رفت به قانون میگیم تحلیل لغوی و بعد استفاده قانونی ما مثلا کلمه میز رو میگن به مادتی به و از تویه برای این من بسیار ما در لغت عرب وضع ماده داریم وضع هیئت هم داریم در همه لغات اینطور نیست که وضع هیئت داشته باشه در لغت عرب داریم و هی در لغت عرب مفیل معانی هستن و ما از کردیم هی جز معانی حرفیه هستن و اصولا معانی حرفیه در هم لغت یه علامت نزجی فکری اون لغت داری رشد اقلانی اون اینه باید اینه او مطمئن باید پایده کلی و ازواری تا تکسر معانی اسمیه در یک باید علامت پیشرفت علمیه شما بیرون فرسون سابقا یخچار نداشتیم یخچار که دوست یخچال یخچار باید داشتیم کلی و داشتیم این علامت رشد علمیه اما تکسر معانی حرفی علامت رشد اقلانیه رشد تلسفیه اون حیثیات و زرافت های کاره اصنجی این میز از حيث اینکه ملکه این میز از حيث این میز از حيث اینکه تحت سخته این هيسی و حیات و معانی حرفیه علامت روش عقلانی و دقت عقلانی است و زیرا هر لغتی که دارای حروف بیشتری و حیات بیشتری این معنی شینه که ظرافت های بیشتری رو به کار برده دقت های بیشتری رو به کار برده تکسر معانی اسمی علامت پیشست جامعه بلااظ علمی در لغات، در اون لغت و تکثر معانی که در لغت عربی معانی حرفی خیلی زیادی داره. این علامت دقت و تأملی است که در لغت عرب شده. یکی از چیزهایی که در لغت عرب آورده شده، حیاات که ما مثلا این مقدار از این حیاات در زبان فارسی نداریم. مقدارش داره، مقدارش فارسی نداریم. حیاات هم تفصیلی کردیم حیات افرادی داریم مثل صیغه فائل و مفعول و اسم زمان و مکان. ما در فارسی نداریم. حیات افرادی داریم، حیات تغییری داریم ترکیبی داریم حیات ترکیبی حالا تقریبی یا غیر تقریبیش باشه یا یا ترکیبی تام یا ترکیبی ناقصه. ترکیبی تام مثل جمله خبریه داریم، جمله انشاییه داریم. ترکیبی ناقص مثل توصیف، ارجل ار ال مثل اضافه کتاب زیب، این حیات ترکیبی ناقصه. پس ما فقط ما در،, در حقیقت در بحث اصولی و در بحث لغوی یعنی لغوی زیر بناس برای اصولی در بحث لغوی دنبال تبین مذلول این حیاتی چون شواهد نشان داد که در لغت عربی برای این حیات معنات در نظر گرفته گرفتن برشنه مثلا معنای مشتر، بحث مشتر حیات افرادیه فائل و مفعول و افعال و مثلا فائل و مفعول و مثلا مفتاق و مفعال و مشرب و دنبال او حیات ترکیبی ناقص مثل اضافه کتاب زید اگر گفت کتاب زید رو بخند ببینید این کتاب غیر پیدا کرد به اضافه به زید بحث سر چی میشه تو اطول که میان آیا این غیر تعدد مدلول میاره یا نمیاره؟ وقتی گفت کتاب زید بخر معناش کتاب غیر زید نخر این شد مفهوم پس شما یک وقت شما راه, راه شوشن شد چیه راهی زید سوال راه. راهش اینه که یک شما در موقع تعرف مدلول هیئت ترکیبی ناقص رو چی میدونیم بگه مکردیم مدلول هیئت ترکیبی ناقص چیه؟ آیا هیئت ترکیبی ناقص از دیگر سنایی میکنه یا سلاتی محبوظ میکنه عوشنش ما حرکمون اینه وقتی که تقیید میاد این تقیید بالغد هیچ فرقی نداره با میز میز فقط چی که هست خودش در خارج مع... معینه یعنی میز غیرستندگیه وقتی گفت رجل عالم رجل عالم رجل مقید به علم میکنه این رجل مقید به علم کاری نمیکنه تعدد درست میکنه سلاتیش میکنه کنیم همون سنایی میمونه آقای خوی نگه خب حق رو طبیعت رضایی سلام ناسه ادنهایی فرما میکنه مثل میده میده حق رو طبیعت شیع به شیع ای که به صفتی دقیق کردیم ما هر کنون اینه که حیاءات ترکیبی ناقص خب دقیق شد بهتر رو به کجا ترکیبی ناقص فرق چندانی با در واقع با محکوم اینه مفهوم لغم برد ترکیبی ناقص نمیاد تعلیق درست بکنه بله حیعت ترکیبی تام مثل این میاد این کارو بکنه این دو چیز آیا چرا این کارو میکنه؟ شاید در عصور مفصل توضیح دادیم که با مرحوم آشانسه نسبانی چود اینشون نسبازن با دقت بیشتر از بقیه صحبت کرده مفصل متعرض کلماتیشان و نقد کلماتیشان شدیم اونجا توضیحات مفصل رو عرض کرده پس نکته آی خودی میفرمایید از اینکه گفت اکلل رجل العالم پس الرجل طبیعت رجل راست درست این مطلب دیگه این کافی نیست این کافی نیست اونی که کافیه اونی که اثر میکنه حکم بره رو رجل نخ عالم بودن بیاد حالت سالس درست بکنه به صد شلاتی این مهمه اونا گند بر این مطلب چیه هیئت ترکیبی توصیفی؟ روش تحلیل ایشون تحلیل نردن ما تحلیل لغویش ارشد کردیم. اون تحلیل لغویش اینه این هیئت ترکیبی ناقص که اسمش هیئت توصیفی است یا هیئت اضافه فرق نمیکنه شو مثال توصیفی میدادن اضافه من اینطوره خب اگر گفت کتاب زیت بخند آیا معناش این که کتاب غیر زیت نخند این هیئت ترکیبی ناقصه فرق نمیکنه هیئت ترکیبی ناقصه سوالی که هست حیاات ترکیبی ناقض سنایی میکنه یا نه قید و مقید با هم دیگه ملاحظه میشن میشن موضوع رجل خارج میشه یه نه خارج رجل مقیده به مثل شیعه مقیده به می نه که خود خارج میشه با قید رو آیه فارسی بین ناظر هست دائما نه شناساییه نه نه ایشون خودش میگه شخص ها به منطقی به مفهوم نمی‌سازن چه تصریفی دارن لذا ایشان یک درجه وسط بین مفهوم گرفتن دقیق بگو ما هم اون دیگه در تحلیل لغوی الان اقامه کردیم یعنی رجل یک قید پیدا کرد این قید رو از ناحیه لفظ آمد مثل که میز قید داره میز چی که داره این صفته ضمن قید داره چی واقعا آل خوی بگه میز مفهوم نداره میگه میز بخر اما گفت اكرام بکر رجل عالم میز قید داره این غیبت پیدا و تعلیق پیدا می‌کنه ما می‌خوایم بگیم هیچ فرق هیئت ترکیبی ناقص کارش این نیست هیئت ترکیبی ناقص فقط قید میاره یعنی رجل مقید به علم این میشه موضوع نه اینکه رجل رو اکرام بکنه با شرط انحصار در علم این این رو این جداش نمی کنه ستایش نمی کنه تحلیل ما اینه تحلیل ما اینه که هیئات ترکیبی ناقص خوب دقت بکنید این نیست که قضیه رسانه‌ای بکنه نمیتونه این کارو بکنه شأن هيئت ترکیبی ناقص موضوع رو محدود می‌کنه. لکه محدود بودن موضوع گاهی به خود معنای نیست. اینجا نزاهه کوی مفهوم نگرفته. و میذم همون چه برمی‌گرده؟ رجول عالم مشهور بین اصولیین مفهوم نگرفته. سرش اینه. اصل سر مفهوم نگرفتن که این هیئت ترکیبی ناقص اثر شنایی سلیسیمی گرفته بوده. زهر ده هزار گذاشتن عذ بخوام از اون. فعلا بحث دیگه in my yard and put him here I'm just going that I love it love